افسونه افسانه به نام مهربان خدای جهانیان سلام دوستان همونطور که می دونید های هر ملت بخشی از هویت فرهنگی اون جغرافیا محسوب می شن قصه هایی که وقتی اونو می به سرزمین رویاها ها میری و با حال خوشی از این سفر بر این هفته با افثانه همراه خواهید بود که قطعا بیشترمون اونو میشناسیم و باهاش هاش همزاد پنداری کردیم افسانه زیبا و ماندگاره ماه پیشونی افسانهای که مربوط به این جغرافیاست، است سرزمین ما ایران بشنوی این كهن افسانه را در روزگاران قدیم مردی بود که زنشو خیلی دوست داشت خداوند به این زن و شوهر دختری داد بسیار زیبا اونا اسم دخترشونو گذاشتن شهربانو شهربانو که بزرگ شد فرستادنش مکتبخونه خونه پیش ملاباجی تا باسواد بشه ملاباجی مدت ها بود که شوهرشو از دست داده بود قایی وقتها بچه‌ها برای اینکه دلش دلشو به دست بیارن براش پیشکشی می بردن تا ملاباجی خوشش بیاد. ملا باجی بین این همه پیشکشیدید هدیه های شهر از بقیه سرتره. به همین دلیل فهمید کاروبار پدر اون از بقیه بچه‌ها رو برهجره بنا به همین دلیل رفت تو این فکر که یه جوری مادر شهر رو از میدون بدر کنه و خودش بشه صاحب اون زندگی باجی که آدم حق بازی بود با شهربانو گرم گرفت و همه جوره در حقش مهربانی کرد تا اینکه موفق شد دل شهربانو رو به دست بیاره و مادرش رو از چشمش بندازه یه روز تو مکتب با یه کاسه پیش شهربانو رفت دخترم اینو به بر خونتونو از قول من سلام و دعای زیاد به ننت برسونو بگو ملا باجی گفت یه خورد سرکه این تو برام بفرست سرکه؟ آره جان دلم سرکه سرکه بر چی؟ وقتی ننت رفت تو زیر زمین از هر خمره ای که خواست سرکه برداره تو بگو نه اه. از اون یکی تا برسه به خمره هفته اون وقت همچین که خم شد سرک برداره تو جلدی پاهاشو از عقب بلند کنه و بندازش تو خمره درشم هم بذار چشم ماه پیشونی همین کارو کرد و مادرش رو انداخت تو خمره سرکه و درش رو گذاش شب که پدر شهربانو اومد خونه دید شهربانو تنهاست از اون علت رو جویا شد پس ننت کو شهربانو ها چیزه این،, این رف لب نه رخت آبی کشه افتاد و آب برده. چی؟ خود پدر شهربانو از قصه زنش بیمار شد و تا صبح در غم از دست دادن اون ازاداری کرد شهربانو فردا که رفت مکتب به تفصیل همه چیز رو به ملاباجی گفت ملاباجی خیلی خوشحال شد شهربانو رو بغل کرد و ماچش کرد و دست به سر و گوشش کشی یک هفته ده روزی که گذشت اگه میخوای بهت خوش بگذره باید کاری بکنی تا پدرت منو بگیری و بیاره تو خونه چی کار باید بکنه؟ امشب هم. یه مش خاکشیر بریز لالوای موهات وقتی روبروی بابات جلوی منقل میشینی سرتو تکون تکون بده خاکشیر را بریزه تو آتیش درق دروغ کنه هم. وقتی بابات پرسید این چی بود؟ کاش کی بزن زیر گریه و اینایی ای رو بگو که من بهت میگم. مولیاواشی مو به مو همه چی به شهربانو گفت و شهربانو هم شب به باباش تحویل داد. <تصفيق> ای اینا چی بود ریخت آتی شربانو؟ من منه, منه بیچاره کسی ندارم تا به هم برسه سرمو بروبه، رخت لباسمو بشوره سر تنم رشک رشگو شپش شده حاله که مادرم از دست رفته اقلا یه مادر دیگه هم ندارم که جاشو براو پر کنه واقعا دلت میخواد یه مادر دیگه داشته باشی؟ چرا که نه هم خودی تو ترا خشک میکنه هم یه دستی به سر من میکشه آخه آخه جوری دختر جان از کجا زنگیر بیارم راهش آسونه پدر جان. یه دست دل و جیگر بگیر بیار بالای در خونه آویزون کن هر کی اول از همه اومد و سرش خورد به اون همونه بگیر فردا بابای شربان و صبح زود رفت یک دست دل و جیگر از دکان قصابی گرفت و آورد آویزون کرد بالای در و ملاباجی هم که گوش به زنگ بود و هوای کارو داشت فوری به بهانه سر و کلش اونجا پیدا شد و تا اومد پا بذاره توی حیات سرش خورد به دلوجیگر. جیگر دروغه که بنا کرد قرولاند کردن این چی بود خورد تو سرم خود این فخت و لباسمو کسیف کرد خدا منو ببخش ملاواجی روم رومسیا همش تخصیل شهربانوه امشب به خدمتش میرسن ای وای نه جانم بچه هستیه نمیفهمه مبادا حرفی بهش بزنی مباد دلشو بشکنی شما چقدر مهربونید؟ مهربونی از خودتونه حالا بگین چرا این دل و جگر اینجاست؟ راستش مادر میخواد بهونه تنهایی رو داره میگه یکی نیست جمع وجورش کنه میگه شپش تن و بدنش رو گرفته شرط کرد باهم اینا رو آبیزون کنم اینجا تا هر کی نفر اول سرش خورد بگیرمش ای وای مبادا من اولی باشم روم سیاه ولی هستید خدا مرگم بده یعنی الان از آن کردی؟ خب اگه دلتون رضا باشه بلا راستیتش خوب نیست آدم زود بلر بگه ولی از اونجایی که شما محترمید و ماه پیشونی رو هم مثل دختر خودم میدونم حرفی نیست چیز زود نونو به تنو چسبند و فردا صبح رفتن محسر و باقی غذایا. فردای اون روزم دخترشو برداشت و آورد تو خونه شهربانو و باباش اسم دختر خودشم گذاشت شهربانو اما هرچه شهربانوی ما خوشگلی و نمک داشت شهربانوی ملاباجی کج و کله و سیاسخته و بدترکیب بود ترش عین کاسای ترشی ملا باجی رسیده نرسیده با شهربانوی ما که حالا دیگه شده بود نادختریش بنای بدرفتاری و گذاشت و تمام کارای خونه رو از جارو پارو و بشور و بمال و بزار و بردار گذاشت به احده اون تفلک از نیشگون و بامبیچه و سقلمه و توسریم مزایقه نگر تو خورد و خوراک و رخت و لباسم خیلی بهش سخت می گرفت خلاصه درست و حسابی شهربانو رو کرده بود کلفت خونه شهربانو هم تفلک از ترس جرأت جیک زدن نداشت از اون طرفم هم تفلکی مادر شهربانو بعد از چهل روز گاوه زردی شد و از خم اومد بیرون ملا باجی هم اونو برد بستش تو طویله و شهربانو رو صدا زد آهای شهربانو بی اینجا ببینم بله مله باجی از فردا صبح باید پیش از آفتاب بیدارشی و اتاقا و حیاتو جارو کنی و ظرفای شب مونده رو بشوری دیگه خواب و بیاری تا هشت صبح تعطیله بعد دوکو یه بخچه پنبه بر میداری با گاو میری صحرا هم گابو میچرونی هم پنبه ها رو میریسی او رو بر, بر میگردی خونه و شام شبو می چشم. شهر وانو چشمی گفت اما تو دلش گفت میرم فقط برای اینکه قیافه تو رو نبینم فردا کله سغر پاشد کاراشو کرد و پیش از اون که باقی اهل خونه از خواب بیدار بشن بخچه پنبه و دوکو برداشت گاوم از طویل آورد بیرون و راهی صحرا شد. نزدیک غروب دید بخچه پنبه نصفم نشده. نشست به حال زار خودش زد زیر گریه. که ناگهان گاوه اومد جلو. بعد هم تند و تند بنا کرد پنبه ها رو خوردن و از اون بر نخ پس دادن. هنوز زردی آفتاب نکت درخت درختا بود که تموم پنبه ها نخ شده بود شهر هم خوشحال دست انداخت گردن گاو و حالا ما چش نکنه کی ما چش گار. گاو و پیش انداخت بند و بسات و جمع کرد برگشت به خونه صبح که کارای خونه و جارو پارو و شستن زرفای شب مونده رو تموم کرد و خواست گاو و برداره ببره صحرا، دید نامادرش امروز به جای یه بخچه پنبه سه تا پخچه گذاشته پل دوک رفت صحرا جای دیروزش نشست اومد دوک راست و ریز کنه که یه حب بادی بلند شد و بخچه های پنبه رو قلتون قلتون برد تا شهرانو اومد بفهمه چی به چیه انداختشون تو چاه قناد، شهربان و زد تو سر خودش صورتشو با ناخون خراشی حالا دیگه چه خاکی به سرم بریزم اگه هر شب فقط کتک تو سری بود امشب دیگه لام و داگ رو درف ما نترس دختار الان این مهم نیست وقت تنگه خوب گوش ببین چی میگم ولی, ولی آقه چطور میشه یه گاب حرف بزنه بعدان خودت بیفهمی حالا خوب گوش گم. ببین چی میگم مو توی چاه پشت سرت یه نرده بونه ازش برو پایین؟ بعد می‌بینی اون تای دیو نشسته برو جلویش سلام کن بعد هر چی گفت تو برعکس جوابشو بده گفت این کارو بکن تو برعکس اون کارو نکن چون کار دیوا وارونه وارونه خلاصه، مادر از سیر تا پیاز کارا رو یاد شهربانو داد شهربانو هم خوشحال شد و رفت توی چاه تهی چاه که رسید دید باغ پردار و درختی و دیو نتراشیده ی ای، اونجا لمیده شهربانو تا چشمش به اون افتاد همون جور که گاف بهش یاد داده بود سلام بالا بلندی تحویلش داد جوری که دیو کیفور شد سلام چشم چشمسی آهدن دوسفی اگه یه لحظه دیرتر برای عرض عدم به خودت جنبیده بودی یه لغمه چپم کرده به؟ خب حالا بگو ببینم تو کجا اینجا کجا اینجا جایه که سم میندازه سیمور پر پهلگون سپر زم بابام آزارم میده صبح تو شب ازم کار میکشه یه گاف گفت بیام اینجا خدمتی شما خیلی خوب بیا جلو، سنگ و بردار و سر منو بشکر نه نه نه نمیشه که این کار خوبی نیست به شما باید مهربونی کرد رشک و شپشاتون رو جورید سر من پاکیزه تره یا سر نامادرید سر نامادری ما ببره البته کی سری شما خیلی خوب علا اون کلنگ و بردار خونه رو خرام بلسه. وقتی کارا تموم شد شهربانو اومد و برداره بره که دید کیسه کیسه پول و طلا کنار بخچشه اما شهربانو بدون اینکه نگاهی به پولا و طلاها بندازه بخچشو برداشت و از دیوه سپاسگذاری و خداحافظی کرد و از نردبون اومد بالا همچین که رسید وسطای چاه دیوه داد زد آ باد سفید دختر را بک باد سیاد دختر را ب چک باد سفیدی اومد و دختر رو چکون داد و چیزی ازش نریخت. باد سیاه هم اومد دختر رو حسابی تکن داد و هیچی ازش نریخ دوباره دیو داد زد آه دختر برگرد خنوز کار تموم نشده چرا؟ کون اگه تموم شده بود الان این باد یک کاری برات میکرد کار سوند آداش کارایی که برای من کردی بیشتر از کاریه که بعد باید برات کرد. حالا باید چی کار آه، از این حیات برو تو حیات دومی از حیات دومی برو تو حیات سومی اون جای نهره بشین لب نهر آب زرد میاد بهش دست نمیزنی آب سیاه میاد بهش دست نمیزنی آب سفید که اومد دست و روت رو بهاش میشوری و میاد که دیو گفته بود انجام داد و با گاوش برگشت خونه. تو راه که برمیگشت به هر جا که می رسید جلوی راهش مثل ماه شب چهارده روشن میشد. خوب که این ور اونور نگاه کرد، دید روشنی نور روی خودشه. نگو وقتی از اون آب سفید به صورتش زده یک ماه روی پیشونیش در اومده و یه ستاره روی چوناش. کرد اگه با این وضع بره به خونه نامادریش روزگارش رو سیاه میکنه که یهو یه گاوه دوباره به زبون در اومد مم. نه ترس ماه پیشونی روسری تو ببند به پیشونید دستمالو ببند به اگه ملا باجی جیازت پرسید بگو رفتم پمبه بریسم گاو در رفت. رفتم گاو و بگیرم پمبه ها رو باد بود دویدم اینور دویدم اون خوردم زمین پیشونی و چونم زخمی شد اول اون کی باور نمیکنه؟ باور میکنه کنه به خونه که رسید همه چیو به ملاباجی گفت سه تا بخچه نخم بهش داد ملاباجی که از یه بخچه نخریسی دیروز شهربانو ماتش برده بود امشب دیگه پاک انگوش به دهن موند که دختره چطور تونسته ستا بخچه پنبر رو یه روزه بریسه رفت تو اتاق سر وقت شربانو تا حقیقت رو از زیر زبونش بکشه که دید تو اتاق انگار هزار تا چلچراق روشنه تا چشمش به صورت شهر افتاد دید نوری از صورت و پیشانی دختر میتابه و یه صورتی به هم زده که از خوشگلیش دهن آدم باز میمونه دستشو کشید آوردش بیرون بردش تو اتاق و نشندش و به زرب و زور حرف و از زیر زبونش کشید و ازش خواست فردا دختر اونم ببره صحرا و بفرستدش ته چا تا اون طفلکی هم از این نمد کلاهی نصیبش بشه شهربانو دختر و برد اما همین که خواست بهش بگه چی کار کنه چی کار نکنه دختر رفت و چا اما از اونجایی که نمیتونش چیکار کنه هر کاریو که دیو گفت و کرد و آخر سرم جونم براتون بگه یه چیز بدقواره از وسط پیشونی و یه چیز بدقواره دیگه از وسط چونه دختر ملا باجی در اومد ملا باجی وقتی در درو باز کرد و قیافه دخترشو دید دو دستی زد تو سرش وای خدا مرگم بده دختر چی به سر خودت آوردی؟ هرچی به پیف گفت من از جام دادم. اما آخه سرقی یا فیمن اینجوری سود خاک بر سر بیار زد <تصح Scriah> همچین مادری با نصورت اون وقت تو باید به این روز بیافتی؟ ببینم اگه تو پیش نبودی شهر آه آه آه آه آه آه آه آه با آی آی آی آی نزم ماله باجی جا نزم به خودت من مادر هر بزارم بریزم در اینجور بیا برای بریم پیشه حکیم. او اون حتماً میتونه این اقرب بدتر کی با از صورتت برداره چی دخترشو برد پیش حکیم حکیمم تنها نسخه ای که تونست براشون بپیچه این بود که هر روز این دوتا جونور بد ترکیبو با چاقو از رو صورت دختر ببره اما ملاباجی هر چقدر این کارو میکرد دوباره هر روز اونا رو صورتش سبز میشدند تا اینکه گذشت و گذشت عروسی دختر پادشاه پیش اومد یه همه اهل شهر رو دعوت کردن به دربار ملاباچی وقت رفتن به مجلس عروسی دخترش رو هفت قلم بزک کرد و چونه و پیشانیشو با دستمال ابریشمی بست تا برن عروسی سه چهار تا گونی نخود لوبیام ریخ جلوی شهرانو که تا اونا برمیگردن پاک کنه اونا با بگو بخند از در رفتن بیرون و شربانو کنار حس زانوها رو بقل زد و رفت تو قصه که یهو یاد حرف دیو افتاد که بهش گفته بود هر وقت گره به کارت افتاد بیا سراغ من به خاطر همین پاشد مثل برق و باد خودشو رسوند به دیو و همه چی رو بهش گفت اینم بسیخ من <تصفيق> هیچ قصد نکر که خودم همه چی رو برات درست میکنم یه کاری میکنم بتونی بری عروسی آخی چطوری؟ باید نخود رو پاک کنم احا احا احا احا این بخش توشی دست لباسه از تاج سر تا گل کمر و کفش پا گردم بند و سین و انگشتر الماس و النگوی تلا توش هست خودت رو برسون به خونه اینا رو بپوش و برو عروسی یه خروس هم بهت میدم بندازشون تو دل نخدلوبیه ها تا تو برگردی همه رو برات پاک کرده این خاک سرم فوتکنتی صورت ملاواجی و دخترش این دست گلم آخر که میخوای بیای بیرون بنداز طرف دوماد و مهورات چسب. همه کارایی که دیو گفت انجام داد و رفت عروسی از بس همه چی تموم بود خیال کردن لابد یکی از بزرگان ولایت و همه پیش و پاش بلند شدن و بردنش اون بالا بالاها جاش دادن دختر ملاباجی اونو شناخت اما ملاباجی گفت غیر ممکنه این ماهتابان شهربانو باشه شهربانو از فرصت استفاده کرد و طوری که ملاباجی نفهمه خاکستر رو پاشید به طرفشون یه اون یزر خاکستر یه کوپه گنده شد و اون دوتا تا آمدن به فهمن دنیا دسته که دیدن خاکستر نشین شدن و همه ماتشون برده که این دیگه چه حال و حکایتیه شهربانو از اون طرفم دست گل و انداق طرف عروس داماد و مهمونای دیگه که شد یه خرمن و همه قرق گل شدند شهربانو که حس کرد دیگه باید آخرای مجلس باشه از تالار اومد بیرون نگو پسر پادشاه که اونو از پشت پرده دیده بود یک دل نهوو صد دل آشقش شده و وقتی دید دختر مثل برق و باد میره دوید دنبالش اون بود و دختر بود و تا اینکه لب جوی یه لنگ کفش شربانو از پاش در اومد و جا موند و خودش رفت پسر پادشاه تصمیم گرفت با دختری که این کفش به پاش بخوره ازدواج کنه از اون طرفم ملا باجی و دخترش اومدن خونه و دیدن همه کارو انجام شده ملاباجی با خودش فکر کرد لابد این گاوه زرد تو طویله ننه جادوگر شهر که با علم اشاره راهکارا رو نشونش میده به خاطر همین تصمیم گرفت از شهرش راحت بشه بنابراین تصمیم گرف بره پیش حکیم باشی میدونی که شوهر من خیلی پول داره پس کاری رو که گفتم بکن پولتو بگیر کار نفهمم این بیچاره چه درد سری برای تو داره نمیتونم این کارو رو بکن یکی بیشتر بهت سکه میدم فقط کاری رو که گفتم بکن <تصفح> حالا این شا. الان یک چیزی بهت میگم تا جوری گاف بمیره که هیچ کن فکرشو نکنه احنا <تصفيق> ملا باجی اومد خونه و طبق چیزی که حکیم بهش گفته بود شروع کرد به آه و ناله کردن که آخ دلم آخ کمرم خدایا مردم شوهرش دست پاچه شد و رفت حکیم آورد آی آی آی آی آی... بالاخره آی آی... میگی چه بلایی سر زنم اومده یا نه درد درمانه <wines> یعنی چیه؟ خدایا خودت در حرف میزنی یا نه گفتم که آی... درد نیست که تنها آه. راه علاجش خوردن جگر گاف زرد. خب اگه اینطوره درمانش توی خونه خودمه آه. ما یه گاو زرد داریم <تصفيق> چطور ممکنه همچین چیزی؟ <تصفيق> چنین گاوی خیلی نایابه <تصفيق> به هر حال داریم پس اگه اینطوره زرد گاو رو شر ببره جگرشو بده زنه بخویره آره <تصفيق> اینا رو شنید آه از نهادش در اومد و دیگه حالشو نفهمید هرچی فکر کرد دید راه به جایی نمیبره مگه اینکه بره سراغ دیف همون شب وقتی خاطر جمع شد همه اهلی خونه خوابن رفت پیش دیف و همه چی رو براش گفت دیف اول پرده از راز گاو برداشت و به شربان و گفت این همون مادرته بعدش شب... خب مادر مادرتو وردار بیارو تو بیابون ول کن منم همزادش رو میفرستم به تو طویله اگه بفهمن اونا کم خردتر از اینن که بفهمن برو خیالت راحت ولی ولی اون تنهایی وسط بیابون چیکار کار کنه؟ میمیره من مراقبشم نمیمیره شهربانو با عجله رفت مادرشو آورد ویل کرد تو صحرا و برگشت پیش دیوه دیوه همزاد مادر شهربانو رو که به شکل همون گاوه زرد بود همراه شهربانو فرستاد و بهش سفارش کرد وقتی اینو کشتن مباده به گوشتش لب بزنی گاوه از طویله کشیدن بیرون و آوردن لب باخچه سرشو بریدن و جگرشو کباب کردن برای خودشون اما شهربانو رو هر کار کردن بخوره نخورد که نخورد. حالا از اون طرف بشنوید که پسر پادشاه از عشق شهربانو سخت ناخوش شد و افتاد تو رخت خواب و هر چه دو درمون کردن نتیجه ای نداد. تا دست آخر دایی رفت پیش مادر شازده قضیه لنگ کفش رو تعریف کرد. از همون ساعتم لنگ کفش دختره رو داد دست چند تا از اهل دربار و اونا رو فرستاد بیرون شهر تا محله به محله و خونه به خونه بگردن و صاحب کفش رو پیدا کنن باجی که اون روز از صبح گوش به زین بود تا تقیه در بلند شد شهربانو رو چپون تو تنور رو در تنو رو گذاشت و یه سینی پر از ارزنم گذاشت روش شو رو خروسرم انداخت تو سینی که به ارزنا نک بزنه تا اگه نالی از دختر در اومد صدا تو صدا بیفته و به گوش کسی نرسه شما دختر داری؟ معلومه که داریم یه دختر که هیش گلنشون نداره. اه، اه، پس داشت کی بیاد؟ عروسکم بیا. او مدرش سلام. سلام بروی ماه. علیکی سلام. این لنگش نیست، آه، چیزه بیشه این کفش رو بپوشید؟ این کفشی از امال خودمه، بدی ببینم بفرمایید وای، شده دو پام نبیره آران تا، آران تا، پاره میشه این هم بابا، پاره میشه، الان. آه، بابا، پاره میشه، اه امروز کم پاش برم داره مگر نه راحت میرفت تو پاش نه بابا این بارو شما نیست بده بمین بدهش به منصور که اکیشو نمیشه نیست بابا پارش کرد بده بمن اونو این ای خادر بشون آزم کرد توری نیست جا نکم دیر یا زود خودشون دوباره برمیدردن ببینم یه در ساکت ببینم دختر دیگه تو این خونه نیست نه خیلی خب پس من رفع زحمت می‌کنم وقتی آلا باقه پایین با باقه بالا ما بشونی توی تنور یه سگ بربر به درش یه سینی ارزن به سرش پس یه چهی؟ آواز خود؟ چقدر او عجیبه توی تنور چه خبره؟ هیچی شما بفرماییم اگه کارتون تموم نشده. من باید توی تنون رو ببینم ها؟ فروس گفت ماه پیشوری توی تنون این ماده <تصفيق> تو برو تو تا نگفتم هم نیا بیرون بابا سید آخه چی کار میکنید؟ عالی جناب گفتم که چیزی اون تو نیست به حکم پادشاه بری دون ای طرف تو هم برو جو بر جوری برم کشته، کشته آخه سلام آه... آه، غلط نکنم تو همون دختر شب عروسی هستی که امرو حیرون کرده بود آره خودتی ما رو تو یادمه درسته؟ خدا من. این کفشم مال منه ببینید آه. یه لنگشم اینجا پیش خودمه همچین چیزی نمیشه جانم به قربانتان پسر قبله عالم از عشق شما سخت خوش شده هر جور شده من باید شما رو به دیدن ایشون ببرم. وقتی موضوع رو شنید و دید هواپسه گفت تا شیربه های رو ندین من اجازه نمیدم اونو ببرین به معمورم گفت شیربه شهربانو همش دو زرکرباز آبیه و نیمن سیر و نیمن پیاز اینا رو بیارین بعد دختره رو بردارین ببرین ملاباجی همه شب و بیدار موند و یه پیرهن کرباسی گل و گشاد به قامت ماه پیشونی دخت فردا نهارم آش آلوچه چربوچیلیوی که پخته بود با یه منصیر و پیازی که آورده بودن به ضرب مشت و توسری به خرد تفلکی شربانو داد. عشق شد گیسفیدا که اومدن دست شربانو رو با اون پیرهن کرباسی گل و که تنش کرده بود داد دست اونا و گفت قابلتونو نداره. همینکه شبان پاشو از خونه بیرون گذاشت از گیس سفدا خواست به برنش صحرا تا از مادرش خداحافظی کنه. شهربانو گیس سفدا رو ول کرد و خودش رفت پیش دیوه برای خداحافظی کجا داری میری با این پیرهن کرباز اوه اوه اوه اهنتم چه بوی گند سیر ازش میزنه بیرون؟ عروسیمه شبی که رفتم عروسی تو قصر شاه پسر از من خوشش اومده و حالا اومده کاریم. این لباسم ملو باجی تنم کرده آش پرسیرم اون مجبورم کرد بخورم حتمی برای اینکه همین روز اولی پسر از ازم بعدیش بیا اوه طوری نیست اینم درست میکنم لباسی رو که این توی بپوش حریره این تاج یاغوتم هم مال توه همینطور انگشتر الماس و یه جفت گوشفاره زمور رد این یه جفت کفش زرینم بپوش دهن پر کن از این مشوه ماه پیشونی با دیوه ویدا کرد و اومد پیش گیسفیدا. اونا ماه پیشونی رو آوردن به قصر. مجلس عقد آماده بود و سیقه عقد جاری شد و شهر بانو شد زن پسر پادشاه. اون وقت شهر بانو نشست شرح حال خودشو مو به مو برای پسر پادشاه تعریف کرد. ماه پیشونی که همه هوش و حواسش پهلوی مادر بیچارش بود و نمیتونست با خیال راحت مزه خوشبختی رو بچشه. یه روز از سر دلتنگی پاشد رفت تو چا سراغ دیوه و ازش خواست اگه از دستش برمیاد مادرش رو به صورت اولش در بیاره دیوه رفت رفت، رو آورد و با تیغ پوستش رو از پشت سر تا دم شکاف که یه هم مادره از جلد گاو پرید بیرون دست انداخت گردن شعربانو و گفت دختر جان، این چه رسمی بود که منو تو خمره بندازی؟ گل خوردم مادر، خجالتم نده اگه نه این میگن عقل آدمی زاد از پس بیاد امیدوارم منو ببخشی و گناه نفه و به پام ننمیسی چی بگم دختر شایدم دست روزگار بوده تا این اتفاقا بیفته و سر آخر تو بشی زن پسر پادشا منو میبخشی مادر چطور میشه حضیزه یه مادر بچهشون نبخشه معلومه که میبخشم خیلی دوستت دارم مادر خیلی. <تصفيق> مادر شهربانو رو بخشید و با دیو خداحافظی کردند و به قصر پادشاه برگشتن و همه به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردن عزیزان افسانهٔ ماهپیشونی رو شنیدین یکی از کهنترین های کشورمون ایران و این افسانه به گفتی محققان و تحلیلگران هایی با داستان فریدون و صحاک داره زیرا مشابه چنین اتفاقی در داستان فریدون و زحاک نیز افتاده. عزیزان، در اساطیر ایران گاو و ماه پیوندی نزدیک و تنگ و تنگ که هر دو انصر در داستان ماه پیشونی نمایانه. همچنین افسانه ماه پیشونی همانندی با داستان سیندرلا در غرب و یشین در چین نیز داره ولی از اونا کوهند تنظیم برای رادیو مریم تاجیک راوی محروخ افسری بازیگران ماندانا محسنی، منا سفی، علی اصغر دریایی، رازیه ممیوند، بیوک میرزایی نگین خاج نصیر، مهدی تهماسبی محمد رضا قلمبر، اکبر مولایی کارگردان بهرام سروری نژاد افکتور محمد رضا قبادی فر صدا محمد رضا محتشمی تحیی کننده زهرا عبدالله زاده افزانه ها رنگی از زندگی افسون زندگیتون دل نشین و مانا تا افسانه دیگر بترود